داستان خوششانس در روزگاران قدیم پادشاهی زندگی میکرد که فقط یک پسر داشت. وقتی پسرک به سن 18 سالگی رسید، پدرش باید راهی جنگ با کشور همسایه میشد. پادشاه شخصاً فرماندهی سپاهیانش رو به عهده گرفت. به پسرش دستور داد که در غیاب اون عهدهدار اداره امور کشور باشه، و بهش کرد که تا زمان برگشتنش از میدان جنگ تحت هیچ شرایطی ازدواج نکنه. روزها اومدند و رفتند. شاهزاده بر کشور پدرش خوک فرما بود. فکر کردن به ازدواج هم حتی برای لحظهی به ذهنش خطور نکرد. اما وقتی شاهزاده به سن 25 سالگی رسید تصمیم گرفت برای خودش، همسری انتخاب بکنه و سر و سامون بگیره هرچه بیشتر به این موضوع فکر میکرد راقبتر میشد به هر حال اون بیاد حرفهای پدرش افتاد و مدتی هم صبر کرد تا اینکه از مدت زمان رفتن پدرش به صحنه نبرد و جنگ ده سال گذشته بود یه روز شاهزاده خدمتکارای خودش رو پیش خودش دعوت کرد و با گروهی از اونها که از مقامات دربار بودند به دنبال پیدا کردن همسری مناسب راهی سفر شدند. شاهزاده نمیدونست باید به کدوم سمت بره. اما بعد از جستجوی بی هدف 20 روزه ناگهان اونها از دور اردوی فرماندهی پدرش رو دیدند. پادشاه از دیدار فرزندش خیلی خوشحال شده بود. سوالات زیادی توی ذهنش بود که از پسرش بپرسه، از اوضاع کشورش. اما وقتی پادشاه متوجه شد که پسرش به جای اون که منتظر برگشتش باشه به قصد پیدا کردن همسر راهی این سفر شده، خیلی عصبانی شد. و گفت تو هر جا که دلت خاص میتونی بری؟ اما من هرگز اجازه نمیدم که افرادم دنبال تو را بیفتن. از میون خدمتکارایی که شاهزاده را همراهی میکردند فقط یکی از اونها از شاهزاده جدا نشد و به اون وفادار موند. اون از کوها و در گذشتند و سرانجام به سرزمینی رسیدند. پادشاه اونجا دختر بسیار زیبایی داشت که وقتی شاهزاده از این موضوع باخبر شد برای دیدن اون لحظه شماری میکرد. پادشاه و دخترش به گرمی از شاهزاده استقبال کردند، چرا که خود شاهزاده هم جوانی بسیار زیبا و خوشرفتار و لایق بود. بنابراین شاهزاده بدون لحظه ای درنگ از دختر پادشاه خاصگاری کرد و پدر و مادر اون هم با این وصلت موافقت کردند. بلافاصله مراسم ازدواج انجام شد. به مدت یک ماه مراسم جشن و پایکوبی بود. بعدشم هم شاهزاده جوان به اتفاق همسرش راهی کشور خودش شد. از اونجایی که سفرشون خیلی طولانی بود، شب اول رو توی ای اقامت کردند. همه آدمایی که توی مهمونخونه بودن، غیر از اون همراه وفادار شاهزاده که سراپاگ گوش و مراقب شاهزاده بود، به خواب سنگینی فرو رفته بودن. نیمه های شب، خدمتکار وفادار، ستا کلاغ رو دید که روی پشت بوم مهمون خونه فرود اومدند و مشغول صحبت کردن شدن. امشب یه زوج جوون و خوشسیما توی این مهمون خونه اقامت دارند. و اینکه به زودی جونشون رو از دست میدن خیلی ناراحت کننده است کلاغ دوفم جواب داد آره حقیقت داره فردا درست وقتی که موقع ظهر پل رودخانهی گلدستریم از هم باز میشه و اونا وقتی دارن از روش رد میشن اون پل باعث میشه که اون دوتا جونشون رو از دست بدن اما گوش کن کسی که پنهونی گوش با باشه و حرفای ما رو بشنبه و برای کسی دیگه ای تعریف کنه بلا فاصله از نوک پا تا زانوش تبدیل به سنگ میشه. کلاها بعد از گفتگو بلا فاصله پرواز کردند و رفتند. چند لحظه بعد سه تا کبوتر از راه رسیدن رو پشت بوم مهمون خونه فرود اومدند و شروع به صحبت کردند. حتی اگه این شاهزاده و شاهزاده خانم به سلامت از روی اون پل عبور کنن باز تو اصل موضوع هیچ فرقی نمیکنه و نابود میشن. قراری که پادشاه کالسکای براشون بفرسته که کاملا جدیده. وقتی که اونها توی کالسکه بشینن باد شدیدی میاد و کالسکه رو به هوا بلند میکنه و تا عبرا می میبره. بعدم کالسکه از اون بالا میفته روی زمین و اونها هر دو تاشون کشته میشن. اما هر کی که این حرفای ما رو بشنوه و فاش بکنه بلا فاصله تا کمر تبدیل به سنگ میشه. کبوترها بعد اینکه حرفهاشون حرفاشون تموم شد پر زدند و رفتند و دور شدند. چند لحظه بعد سه تا اقاب از راه رسیدن و این حرفها دوباره بینشون رد و بدل شد. اونا میگفتن اگه این زوج جوون از خطر ریزش پل و کالسکه جون سالم به در ببرن، پادشاه قصد داره برای هر کدومشون لباس های زربافت و شاهانه بفرسته. زمانی که اونا این لباس ها رو بپوشن بلا فاصله آتیش می‌گیرن. اما کسی که این حرف مارو بشنوه و برای کسی تعریف کنه از نوک پا تا سر اون تبدیل به سنگ میشه. خلاصه خدمتکار وفادار همه این حرف رو شنیده بود. صبح روز بعد شاهزاده جوان جوون و همسرش از خواب بیدار شدن صبحانه خوردن خوابهایی که شب قبل دیده بودن برای همدیگه تعریف میکردن آخرش خدمتکار وفادار شاهزاده به حرف اومد و گفت ای شاهزاده مهربون و خوش اقبال منم دیشب خیلی خواب دیدم اگه والا حضرت هر اون رو که من بهش میگم گوش بکنه ما بدون هیچ حادثه‌ای به خونمون میرسیم. در غیر این صورت جونتون را از دست میدین و حادثه شومی در انتظارتونه. خوابهای من هرگز دروغ نمیگن. از شما تقاضا میکنم که هر اونچرا که من تو سفر بهتون میگم بهش عمل کنید. شاهزاده جواب داد: خیلی هم در مورد خواب هات فکر نکن. خواب یه چیزی شبیه عبره. اما با این حال برای اینکه تو را از نگرانی در بیارم بهت قول میدم که هرچرا که بگی من بهش گوش بدم. با این قولی که شاهزاده به خدمتکار وفادارش داد اونها به سفر خودشون ادامه دادن. موقع ظهر بود که به روتخونه رسیدن. وقتی که قصد داشتن از روی پل عبور کنن خدمتکار گفت شاهزاده اجازه بدید که کالسکه رو همینجا بذاریم و کمی پیاده روی کنیم. از شهر خیلی فاصله نداریم. وقتی به اونجا رسیدیم خیلی راحت میتونیم یه کالسکه دیگه گیر بیاریم. چون چرخهای این کالسکه خیلی کهنه و فرسود است. فکر نمی کنم خیلی هم دووم بیاره. شاهزاده نگاهی به کالسکه انداخت. کالسکه برخلاف گفتههای خدمتکارش ایبو ایراد خاصی نداشت. اما شاهزاده طبق قولی که به خدمت کارش داده بود مخالفتی نکرد. اونو بدون هیچ حادثه‌ای از روی پل گذشتند و به شهری که گفته شده بود رسیدند. یک کالسی خریدند و سوار اون شدند و به راه خودشون ادامه دادند. اما هنوز مسافت زیادی طی نکرده بودند که از طرف فادشا پیکی رسید و گفت: "علا حضرت این کالسکه زیبا رو خدمت شما آوردیم تا با شکوه و جلال شایسته وارد کشورتون بشید و از میون مردم عبور کنید. شاهزاده انقدر زغزده شده بود که زبونش بند اومده بود. اما خدمتکار گفت آلی جناب اجازه بدید این کالسکه رو امتحان کنم. اگر از هر نظر بی و نقص دیدم شما سوار بشید وگرنه یعنی بهتره که با کالسکه خودمون به این سفر ادامه بدیم. شهستاده هیچ مخالفتی هی نکرد. خدمتکار بعد از اینکه به طور کامل کالسکه رو بازرسی کرد، گفت آلی جناب، این کالسکه همونقدر که زیبایه به همون اندازم بد و پر ایراده. اون وقت کالسکه رو تیکه تیکه کرد و سوار همون کالسکه قبلی شدند و به سفرشون ادامه دادن. سرانجام، شاهزاده با همسرش به مرز کشورشون رسیدن در اونجا پیکی در انتظارشون بود که از طرف پادشاه براشون دو دست لباس زربافت و شاهانه آورده بود خدمتگزار وفادار با حالتی التماس آمیز به شاهزاده گفت خواهش میکنم این لباسها رو نپوشید و تا من این لباسها رو تیکه تیکه نکردم آروم و قرار پیدا نمیکنم. وقتی پادشاه پیر همه نخشه های خودش رو نقشه براب دید، خیلی عصبانی و ناراحت شده بود. حالا که پسر اون زنده پیش اون رسیده بود، باید تاج و تخت رو طبق قوانین کشورش به پسرش می‌داد که ازدواج هم کرده بود. پادشاه دلش می‌خواست بدونه که چجوری جوری فرزندش جون سالم به در برده. به خاطر همین به پسرش گفت، پسرم، از اینکه تو رو در سلامت کامل میبینم خیلی خوشحالم. اما نمیدونم چرا از قبول کردن اون کالسکه زیبا و اون لباسهای باشکو خودداری کردی؟ چرا اونها رو از بین بردی؟ شهزاد جواب داد؟ حتما میگم بهتون. من شخصا از نابود شدنشون خیلی ناراحتم. اما خدمتکارم از من تقاضا کرده بود که در تموم مدت این سفر همه برنامه ریزی ها با اون باشه. و منم چون بهش قول داده بودم، باهاش موافقت کردم. اون به من گفت که اگه حرفها و نصیحتهای اون رو گوش نکنم، هرگز به سلامت به مقصد نمیرسم. خلاصه، خشم و ناراحتی سرتابهای وجود پادشاه رو گرفته بود. همه ی مشاورهای خودش رو صدا کرد و خدمتکار وفادار رو به مرگ محکوم کرد. طوری نکشید که چوبه دار تو میدان اصلی شهر نصب شد. خدمتکارم به پای چوبه دار هدایت شد تا حکم ادام براش قرائت بشه. تنابه دار رو به گردن خدمتکار انداختن. اما اون تو آخرین لحظات عمرش اجازه خواست تا چند کلمه صحبت کنه. خدمتکار گفت موقع بازگشت به کشور اولین شبی رو که تو اون مهمون خونه خوابیدیم، تمام شب رو بیدار موندم تا مراقب اوضا باشم. حرفایی که بین کلاقا رد و بدل شد رو برای همه اونایی که اونجا جمع شده بودن گفت. همون لحظه پاهای خدمتکار تا زانوهاش تبدیل به سنگ شد. شاهزاده از اون خواست که دیگه سکوت کنه و حرفی نزنه چرا که از نظر همه بیگناهی خدمتکار دیگه ثابت شده بود. اما خدمتکار به حرفاش ادامه داد. زمانی که همه ماجرا رو گفته بود، همه اعضای بدنش تبدیل به سنگ شده بود. آه، شاهزاده به خاطر از دست دادن خدمتکار وفادارش چقدر تعصف خورده بود. و اونچه که شاهزاده را بیش از بیش آزار میداد این بود که خدمتکارش در راه وفاداری اون جونش رو از دست داده. شاهزاده تصمیم گرفت تمام دنیا رو زیر پا بذاره. و تا زمانی که راهی برای نجات خدمتکارش پیدا نکرده به کشورش بر را گرده. توی قصر شاهزاده پیرزنی زندگی میکرد که دایه شاهزاده بود. شاهزاده نقشه خودش رو با اون میون گذاشت. همسرش رو هم به اون سپرد. پیرزن هم قبل از اینکه شاهزاده راهی سفر بشه به اون گفت پسرم، تو راه درازی در پیش داری. تا زمانی که خوششانس رو پیدا نکردی، بر نگرد. اگر اون به تو نتونه کمکی بکنه، مطمئن باش که توی این کره خاکی هیچ کس نمیتونه کاری برات انجام بده. شاهزاده سفر خودش رو به امید پیدا کردن خوششانس شروع کرد. اون رفت و رفت و مرزهای کشورش رو پشت سر گذاشت. وارد جنگل شد. سه روز تمام توی اون جنگل سرگردون بود اما توی این مدت با هیچ آدمیزادی برخورد نکرده بود پایان روز سوم نزدیک نزدیک ای رسید که کنار اون یه آسیاب بود شاهزاده شب اونجا سپری کرد صبح روز بعد آسیابون از اون پرسید آلی جناب تو تنها و بدون همراهی کجا داری میری؟ شاهزاده قصد خودش رو از این سفر برای آسیابون توضیح داد. آسیابون گفت علا حضرت از شما می میکنم وقتی که خوش شانس رو پیدا کردی ازش بپرسی که چرا من با داشتن یه آسیاب خوب و مجهز و آرد کردن مقدار زیادی گندم هنوز فقیرم و روزها رو تو فقر و سختی میگذرونم؟ شاهزاده بهش قول داد که این کار بکنه و به سفر خودش ادامه داد سه روز دیگه رفت و بدون هدف به دنبال خوششانس میگشت روز سوم وارد شهر کوچیکی شد دیر وقت بود و زمانی که شاهزاده قدم به اون شهر گذاش از هیچ نقطه ای از شهر روشنایی به چشم نمیخورد او از وسط شهر عبور کرد بدون اینکه در خونه ای رو به صدا در بیاره، رفت و رفت. وقتی که به انتهای شهر رسید، متوجه یه روشنایی شد که از پنجره خونه ای به بیرون میتابید. شاهزاده یک راست به سمت اون روشنایی رفت. سه تا دختر جوون رو در حال بازی کردن دید. شاهزاده ازشون خواهش کرد تا به اون اجازه بدن که شب رو اونجا سپری کنه. دختر را با کمال می قبول کردند. شاهزاده را به خونهشون دعوت کردند و بهش غذا و جای خواب دادند. صبح روز بعد، وقتی که شاهزاده می‌خواست اونجا رو ترک بکنه، ستا دختر جوان وقتی از موضوع سفر شاهزاده باخبر شدن به اون گفتن: شاهزاده مهربون، وقتی که خوش شانس رو دیدی ازش بپرس که چرا با وجود این که ما سی سالمونه هنوز هم هیچ کس از ما خواستگاری نکرده. چرا که ما خیلی زیبا و خوش اخلاق و مهربونیم. شاهساده قول داد که این سوال رو هم از خوششانس بپرسه و همچنان به راه خودش ادامه داد. شاهزاده بعد از طی کردن مسافتی طولانی به جنگل بزرگی رسید. از صبح تا شب و از شب تا صبح بی هدف تو اون جنگل پیش میرفت. تا اینکه آخرش به انتهای جنگل رسید تو حاشیه جنگل رودخونه خیلی زیبایی بود این رودخونه با همه رودخونه ها فرق میکرد رودخونه به محض دیدن شاهزاده از حرکت ایستاد و شروع به حرف زدن کرد و گفت آهای شاهزاده به من بگو چطور شده که سر از اینجا در آوردی ساله که من اینجا جاریم اما تا به امروز هیچ آدمی زادی از کنار من رد نشده. شاهزاده جواب داد: اگر از وسط شکاف برداری تا من عبور کنم، اون وقت علت اومدنم رو توضیح میدم. رتخونه بلافاصله از وسط دو نیم شد و شاهزاده بدون اینکه پاش هم خیس بشه از وسط اون گذشت. خودش رو به اون طرف رودخونه رسوند و همون جوری که قول داده بود، ماجرای سفرش رو برای رودخونه تعریف کرد. رودخونه با صدای بلند گفت حالا که این وقتی که خوششانس رو دیدی ازش سوال کن چرا با وجود این که من رودخونه زلال و شفافم اما هیچ ماهی و موجود زندهای تو آب من وجود نداره؟ شاهزاده قول داد که این سوال رو هم بپرسه. وقتی که شاهصاد جنگل رو پشت سرگذاشت و از میون دردهی گذشت، سرانجام به خونه کوچیک و کاهگری رسید پشت بوم اون خونه با ساقه های نی پوشیده شده بود. اون یک راست رفت داخل خونه چون خیلی خسته شده بود. همه چیز توی خونه بود. خونه تمیز و مرتب بود. پیرزن مهروانی که صداقت توی چشماش موج میزد کنار اجاق نشسته بود شاهزاده گفت صبح خیلی مادر پیرزن جواب داد همیشه بخت با تو یار باشه پسرم چجوری از اینجا سر در آوردی؟ چی تو رو به اینجا کشونده؟ شاهزاده جواب داد من دنبال خوششانس میگردم تیرزان گفت درست اومدی پسرم. من مادر خوششانسم. ولی اون خونه نیست. تو مزرعه سرگرم کاره. اگه میخوای تو هم میتونی بری اونجا. اونجا دوتا بیل هست. وقتی که اونجا رفتی اون در حال کندن زمینه. باشی چرفی نزن. حالا ساعت یازدهه. زمانی که اون میشینه تا غذاش رو بخوره تو هم کنارش بشین و غذا بخور. پسرم بعد خوردن غذا از تو سؤالاتی میپرسه. اون وقت تو هم میتونی سؤالاتت رو از اون بپرسی. مطمئن باش که همه ی رو جواب میده. پیرزن مهربون بعد از گفتن این حرف ها راه رو به اون نشون داد. و شاه به راه افتاد. طبق گفتهای پیرزن عمل کرد. بعد از غذا خوردن اونها دراز کشیدن تا کمی استراحت کنن. ادرس خوششانس شروع کرد به صحبت کردن گفت بگو ببینم تو چه جور مردی هستی چون از ای که اومدی پیش من هیچ حرفی نزدی شاهزاده جواب داد من لال نیستم اما شاهزاده غمگینی‌ام که خدمتکار وفادارم تبدیل به سنگ شده مایلم بدونم که چجوری میتونم به اون کمک کنم خوششانس گفت کارتو خیلی قابل تحسینه چون چنین خدمتکار شایسته ای داری که در راه کمک به تو اینجوری شده حالا به خونت برگرد وقتی که به خونت رسیدی همسرت صاحب یه پسر کوچیک شده تو باید سه قطره از خون انگشت کوچیک کودکت رو بگیری و به وسیله یه ساق علف به مچ دستای خدمتکارت بمالی و خدمتکار جون میگیره و زنده میشه شاهزاده بعد از تشکر و قدردانی از خوششانس سوالات بعدیشم پرسید. گفت سوال دیگه هم دارم. تو این نزدیکی جنگلی هست. یه رودخونه ی زلال همونجا وجود داره. اما توی اون رودخونه هیچ ماهی زندهی زندگی نمیکنه. چرا اینجوریه؟ خوشانس جواب داد. چون تا به حال هیچ کسی تو این رودخونه غرق نشده. وقتی که داری از اونجا رد میشی خیلی احتیاط کن. قبل از اینکه خودت به اون طرف رودخونه نرسیدی، جواب رودخونه رو نمیدی. قبل از رفتن، شاهزاده گفت: قبل رفتن سوال ای هم دارم. من توی مسیر شب رو توی خونه ای گذراندم که تا دختر جوان اونجا زندگی می کردم. هر ستاشون زیبا و مهربون و سخت کش بودن. با این حال هنوز ازدواج نکرده بودن. علتش چیه؟ خوششانس شواب داد چون اونا همیشه آشغالی خونه شون رو به سمت خورشید جارو می کنن. شاهزاده آخرین سؤالش رو هم که در مورد آسیابون بود، از خوشانس پرسید. بهش گفت تو اون آسیاب آسیابونی هست که کلی گندم مارد میکنه ولی با این حال خیلی فقیره. چه جوابی بهش بدم؟ خوششانس جواب داد چون اون آسیابون همه چیز رو برای خودش میخواد. کمکی به نیازمندا نمیکنه شاهزاده جوابهای خوششانس رو به دقت یادداشت میکرد. بعد از خداحافظی گرم با خوشانس راه بازگشت به خونش رو در پیش گرفت. وقتی که به کنار رودخونه رسید رودخونه ازش سوال کرد. شاخصاده جواب داد بعد اینکه به اون طرف رودخونه رسیدم جوابت رو میدم. رودخونه مثل دفعه قبل از وسط شکاف برداشت. شاخصاده از رودخونه گذشت و بعد هم روی بلندی ایستاد و گفت گوش کن رودخونه. خوششانس گفت تا زمانی که کسی تو آبهای تو قرق نشده نوع ماهی یا موجود زندهای توی آب تو نمیتونن زندگی کنند رودخونه به محض شنیدن این جواب تقیان کرد امواج خروشان خودش رو به سمت ساحل و اونجایی که شاهزاده ایستاده بود فرستاد اما شاهزاده جای پای خودش رو محکم کرده بود رودخونه بعد از سه بار تقیان کردن به وضعیت سابقه خودش برگشت و نتونست شاهزاده رو قرخ کنه. شاهزاده زیر نور خورشید دراز کشید تا لباسهاش خشک بشه. بعد هم به مسیر خودش ادامه داد. شاهزاده جوان بار دیگه شب رو تو کلبه آسیابون سپری کرد و جواب آسیابون رو هم داد. و بعد هم از اون ستا خواهر خواست که هرگز آشغال‌های خودشون رو به سمت خورشید جارو نکنن. شاهزاده تقریبا دم در خونش رسیده بود که متوجه تعدادی دوست شد که همراه یه اسب در حال گذشتن از رودخونه بودند اونا هنوز از نیمه ی عرض رودخونه نگذشته بودند که ناگهان رودخونه تقیان کرد و اون دوستها توی آب رودخونه غرق شدند از اون به بعد اون رودخونه بهترین محل ماهیگیری شده بود. پر از ماهیای خوشمزه و زنده شده بود. آسیابون هم انسان خیرخواهی شد و به نیازمندا کمک میکرد. کم کم زندگیش رونق گرفت و ثروتمند شد. شاهزاده از اون تا خواهر هم خواست که دیگه هرگز به خورشید اهانت نکنند. اون‌ها هم قبول کرده بودند و در مدتی کمتر از یک هفته هر کدوم خاصه پیدا کرده بودن. وقتی شاهزاده به خونش رسید، متوجه شد که همسرش صاحب یه پسر زیبا شده. شاهزاده بدون لحظه درنگ از انگشت کوچیک کودک خودش ست قطر خون گرفت. اون رو روی مچهای سنگی خدمت کزارش بست. سنگ با صدای بلند از هم شکافت و هفتی که شد و ناگهان خدمتکار وفادار جون گرفت و به وضعیت سابقش برگشت وقتی پادشاه پیر از موضوع با خبر شد خشم و غضب درونش زبونه می کشید از شدت ناراحتی خودش رو به زمین کوبید و جون خودش را از دست داد خلاصه خدمتکار وفادار کنار شاه ساده به زندگیش ادامه داد و تا آخر عمر صادقانه به اون خدمت کرد اگر همطور الان نمرده باشه، هنوز هم در خدمت شاهزاده است. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صوتی نشانی کانال تلگرامی Tقط می/مهران دوستی، T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 dotblockfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی